اعوذ بالله السمیع العلیم من الشیطان اللین الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله رب العالمین السلام والسلام السلام على نبینا و آله الطاهرین خدمت عزیزان دانشجوی خودم عرض سلام دارم صبح بخیر عرض میکنیم انشاءالله که از نعمت صحت و سلامت به طور کامل و خوردار هستید و انشاءالله که از هر گونه بلایی هم به دور باشید میلاد امیر و مولا الموحدین علیه آلاه و دهیت و سماء را هم خدمت شما من تبریک به بخصوص عرض می‌کنم ان که از شفاعت در دنیا و آخرت بهره مند هستید و از اینکه امروز هم با تأخیر به خاطر جلسه که ما داشتیم کلاس رو در خدمت شما هستیم پوزش می تنبیم هفته آینده هم همین ساعت در خدمت هستیم دیگه بعد از سیزده هم جلسه نداریم اتمالا تا بعد از اید. دیگه بر میگرده همون چهارشنبه خود خب هفته آینده امشان الله در خدمت شما هستیم ما در عبیاتی که از آیه متنبی خدمت شما ارز کردیم که در مده بدر ابن عمار بودش پنج بیت من برای شما خوندم امروز از بیت ششم در خدمت شما هستم میخونم بسیار زیباست نکات خوبی رو ما میتونیم توش پیدا کنیم به خاطر بسپریم کمک ما در صرف نه بلاغت فهم شعر متون لازم است خواهد کرد که انشالله در این شکل مجازی که درس میخونیم مفید باشه خب شیری رو که این آقای بدرب نعمار با شلاق خودش صوت خودش زده بود و به خاک انداخته بود رو داش توصیف میکرد تو بیت پنجم گفتش که اگر کسی این رو در شب ببینه دو تا چشم او مثل آتش کاروانی که در جای اطراف کردند می‌درخشه چشمانش رو در شب حالا میگه یتا او سرا یتا او سرا مترفقا من تیههی فکعنده آسین یجس و علیل یتعثرا مترفقا من تیههی وَكَعَلَّهُ آسِنْ يَجُسْ وَعَلِیْلَا چند کلمه هست که خب اینها رو اول معنا کنیم یکی اتیه تیه یعنی کبریاء اتیهو یعنی علی کبریاءو یعنی علقرور قرور نخبت کبریاغ این کلمه تی، دوم کلمه آسن آسن اسم فائل، حوث قازن آسی، آسن یعنی الطبيب یعنی تبیب، یعنی دکتر يجوس یعنی ماینه میکند جس يجوس یعنی ماینه میکند جسه یعنی ماینه کرد، بررسی کرد یجسه یعنی ماینه می کند از, سرا، از سرا، یعنی اتراب، یعنی خاک خوب. خوب لغاتی رو که یتعو که وتا یتعو یعنی گام میزند قدم میزنه یتعو فعل زمیر اون شیر فائقشه یعنی گام میزند اون شیر از سر، یعنی بر روی اون زمین بر روی اون خاک ها یعنی یواش یواش با دستاش راه میره شیر دیدید موقعی که میخواد کمین کنه میخواد شکاری بکنه چجوری یواش این دستارو رو باید میداره میگذاره حرکت میکنه آه اونم بکنه یتع و سر یواش یواش حرکت میکنه مترفقا مترافق حال است از فایده در حالی که خیلی آرام حرکت میکنه راه میره بر روی اون زمین خیلی خیلی آرام در حالی که خیلی آرام این منو بهش میگن من تعلیلیه من تعلیلیه معادل لامه من یعنی من تکبرهی، من کبریهی، من اجبهی، من قرورهی، یعنی به خاطر قرورش، به خاطر اجبهش، به خاطر تکبرش، میگه این شیره همچین یواش این دستها و پاها رو میذاره روی این خاک ها خیلی آروم حرکت میکنه به خاطر این قروری که داره چون پیوان اگر بترسه دیدید مثلا روبا یا شغال اینها که میترسن راه میرن دیدید تون راه میرن سرشونه این بر میکنند نگاه میکنن چون خواهفند از اینکه شکار بشن اما شیر نه شیر کسی رو ازش نمیترسه آرون آرون گام میزنه و حرکت میکنه به خاطر غروری که داره عدم ترسی که داره و ف... یعنی بنابراین که اندهو این میخوره به این حسد شیر پس این شیر در این حالت که اندهو انگار یک پزشکی است یک است یجوسا علیلا که داره بررسی میکنه معاینه میکنه مریضی را علیل یعنی مریض یجوسا علیلا جمله بعد از نکره میشه صفت صفت واسمه انگار پزشکی است که داره جستجو میکنه بررسی میکنه معاینه میکنه یک بیماری رو قدیم طبیب که میره الانم همینطوره بالای سر بیمار دستشو یواش گذاشت کنارشی شکم کن بود بعد میذاشت گذاشت میذاشت به دقت نگاه میکرد دستشو یواش یواش میگه اینم همینطوره انگار یک پزشکی است که داره بررسی میکنه معاینه میکنه بیماری رو حرکت کردن این شیر متکبرانه در اون سرزمین بدون عجله ما تشفی شده به پزشکی که بیماری رو داره معاینه میکنه به دقت بدونه که هیچ گونه عجلهی داشته باشی هیچ عجلهی ندارد در رفتن حالا چرا؟ به خاطر اینکه غرور داره به خاطر اینکه که نمیترسه اونی که عجله میکنه میترسه تونتون حرکت میکنه اون کسیست که میترسه نشیر ن به خاطر عزت نفسش چنین پس بشنگ بود یتا اصرا مترفقن من تیههی فکه اندهو آسم یجست و عدیده این فکه اندهو که اندات تشمیه. هیئت این شیر در راه رفتن تشبیه شده به هیئت یک طبیب و پزشک به عنوان کسی که داره معاینه میکنه مریضی رو و خیلی خیلی آروم همین کار رو انجام میده به اصطلاح بلاغیها توش تشبیه تمسیلی است حیعتی به هیئتی تشبیه شده خواب بیت بعدی باز همین شیر رو داره توصیف می‌کنه و یرد و با یروت او فراته اله یعفو حتا تسیر چند کلمه داره کلماتش رو میگیم بعد عبارت رو معنا یکی یعفوخ یعفوخ یا یافوخ که گای همزه رو تلیین میکنن یافوخ میگن این قسمت بالای سره که اون ملاج سر اون رو میگن یعفو این نوکسر افره این یالهای کنار گردن شیر افره یالهای کنار گردن شیر یا بهتر بگیم افره نقل کردن افره هم نقل کردن که افره بهتره موی پشت سر شیره موی که پشت سر شیره تو لغت میگن از شعر و المجتمع و علاقفاه مویی که پشت سرش که همون یال میشه حالا توضیح میدم میفن یافوخ هم که بالای سر بود اکلیل هم یعنی تاج اکلیل هم یعنی تاج شیر حتما این شیرهایی که نر هستند اینم شیر نر بوده و شیر قوی بوده حتماً حالا یا در باغ وحش دیدید یا در ال... تلویزیون دیدید راز بقا یا در ال... عکس دیدید این شیر حیال داره یا موهایی که اینور و اونوره سرش ریخته این شیر اگر دیده باشید که در حالت عادیه این یالها از دو طرف گردنش ریخته پایید ولی همین شیر موقعی که میخواد حمله کنه یا میخواد بجنگه و بترسانه ترسانه این یال های کنار گردن رو که یه مقدار میاره جلو یال پشت سرش یعنی اون موهایی که پشت سرش، اونها هم بلند میکنه یعنی سرشو شما در یک گردی یک دایرهی از یال میبینید در حالتی که عادیه اون موی پشت سرش خابیده ولی وقتی که میخواد حمله کنه یا به اون رو هم بلند میکنه شما صورت اون رو در مجموعه از یال میبینید این داره اون حالت خشمشو میگه میگه یرود دو بر میگردونه این شیر و یرود دو و یرود دو اتفجام و, و بر میگرداند او موی پشت سرش رو انا یافوخهی به قسمت بالای سرش موی پشت سرش رو هم بلند میکنه و میاره روی سرش این ورمون ولش که یال داره بالای سرش هم موها رو سیخ میکنه و به شکل یال بلند دیده میشه حتی تسیره تاجی هایی که می شود این افرز زمیر تاثیره میخوره به افره این افره می شود اکلیلن به تاج برای سرش یعنی آدم فکر میکنه که این یه تاج گذاشته روی سرش م? یه موهای پشت سرش یالای پشت سرش اینقدر بقول خودمون بلنده موقعی که حسابانیم میشه اینو بلندش میکنه آه. این یال های این یالای این اونبرش هم که ریخته آدم فکر میکنه یه تاج گذاشته رو سرش نه اون یالهایه که بلند کرد حتی تاثیر این حتی م... یعنی الا بعدش ان در تقدیر دیگه که فعل تاثیرمنسوب شده ان انتصیره تا اینکه میشود، می شود این افره اکلیلن یعنی تاجن لرعسهی برای سرش اون لرعسهی صفت اکلیلن بوده اون بوده تاجی می شود برای سرش تاجی برای سر او میشه، پس تا چی گفت؟ یا عکس منگار انداخته از شیره صورت او، یال های این و صورتش اون ور صورتش ریخته و موقعی که عصبانی شده یال پشت سرش هم کرده بالای سرش نگه داشته جوری که آدم فکر میکنه یه تاجه سرخی رو روی سرش بذاشته مثل خروس دیدی دعوا میکنه عصبانی میشه دعوا میکنه این موهای دور گردنش رو بلند میکنه آه. میگه اونم هم همینطور این هایی که پشت سرش یال ها رو بلند میکنه و انسان احساس میکنه که یه تاجی گذاشته روی سرش و یرد و افرطهو اله یافوخهی حتی تسیر لرعسهی اکلیلا خب این مال این بیت حالا نگاه کنید بیت بعد رو. و تزنهو ممایو زمجرو نفسوهو انها لشدت غیزهی مشغولا لشدت غیزهی مشغولا زمجره زمجره یو زمجرتن زمجره تن زمجره یو یعنی قررید شیر می میگن زمجره یه لغت دیگه داشتیم که زعره یزعرو زعیر مسترش بود خوندیم اونم یعنی میگورد قردش شیر شیر قردید میگن زهره شیر قرید میگن زمجره این رو فهمید غیزم که میدونید یعنی قصب مشغول هم که میدونید اسم مفعول شغله یعنی مشغول کرد مشغول یعنی کسی که به کاری مشغول شد م? زن نگذن نهم یعنی گمان کرد نگاه کنید الان این بیت رو اینم داره اون یتعو بد و یردو و تزنو اینا همه به قول خودمون هست به هم و اون شیر رو داره بیان میکنه فیلها مزاره اومده یعنی کارش اینه کارش اینه که موهای پشت سرش رو بلند میکنه مسکی تاز رو سج. کارش اینه که متکبرانه راه میره مثل اینکه پزشکی داره معاینه میکنه. اینجا میگه و تظننه نفس سحو مشغولا انه این بیت یه مقداری به همریختگی داره یعنی جا, به جا شده. خب بیت دیگه یکی از راه های فهم شعر اینه که شما بتونید اون شعر رو ردیفش کنید یعنی هرچی رو بذارید سر جای خودش مشخص بشه که کجا جاش بوده اون موقع میتونید معنا کنید الان نگاه کنید میگیم و تزن نهو نفسه مشغولا انها تا اینجا درست کردیم تزنهو اونها مفعول اوله میخوره به شیر نفسهو فاعلشه فاعل تزن مشغولن مفعول دومشه انها هم متعلق به مشغولنه ها هم میخوره به نفس ترجمه میشه چی و گمان می کند نفس آن شیر خود اون شیر گمان می کند هو خودش را از اون نهو نفس رو مشغولن انها مشغول شده قافل شده از نفسش یعنی این شیر گمان میکنه که یعنی به این طور تا حواسش به خودش نیست. دیدید فازیا عصبانی که میشن اصلا حواسشون به خودشون نیست. میگه نفسش او را مشغول از خودش گمان میکند. نفسش او را مشغول از خودش گمان میکنه مما یوزم رو این مما دوستو متعلق از به اون مشغولن گمان میکنه او را مشغول گمان میکنه که خودش گمان میکنه که حواسش به خودش نیست. چرا؟ من مای و این من من تعلیلی است. اون ماه مای مستری است؟ من مای و یعنی من زمجرتهی. به خاطر قررش هایی که میکنه. دادو بیدادی که میکنه. حالا چرا داده بیداد میکنه این لعه متعلق به یوزمجه راست؟ چرا داده بیداد میکنه؟ به شدت غیزهی به خاطر شدت خشمش ها دیدید موقع که میخواد جنگ کنه این تاج درست میکنه و سرش اینطور ها بعدهای قرش قردش میکنه میگه این قرشهاش هاش به خاطر شدت قذب اوست به خاطر شدت قست حالا اگر بیت رو بخواهیم اگر بیت رو بخواهیم به شکل فارسی چی به شکل ردیف بیان کنیم اگه بیت رو بخواهیم اگه بیت رو بخواهیم به شکل ردیف بنویسیم این میشه و تزون نهو به جای ها بنویسید ازد ما خود به شیر دیگه یعنی ازا نفس نفسهو یعنی نفس اون ازد خودش گمان میکند نفس و اون اصد خودش را اون شیر خودش رو گمان میکنه مشغولا انها که از خودش غافل شده میگیم اینقدر داد میزنه حواسش به خودش نیست چیکار داره میکنه حالا چرا مشغول است مم ما یوزم یعنی من زمجرته به خاطر شدت قردشهاش نیوریه که انگار حواسش به خودش نیست حالا چرا انقدر قررش میکنه لشدت قیزهی به خاطر شدت قیز و خشمی که کرده به خاطر شدت قیز و خشمش اینطوریه شعر معلوم شد مثل یه نفر دیدید میگه ها حواسش به خودش نیست دکناه پیرنش بازه به قول خودمون. کف دانش رو افتاده اینقدر غذب کرده حواسش به خودش نیست چرا حواسش به خودش خاطر شدت داد بیدادی که داره میکنه حالا چرا اینقدر داد و بیداد میکنه؟ به خاطر شدت خشمی که کردی وی شیرم همینطور حواسش به خودش نیست که چیکار داره میکنه به خاطر شدت گردش هایی که داره میکنه اون شدت گردشهاش هاشم به خاطر شدت غضبیه که داره و تظن انه مم ما یزنجره ما گفتیم منش منه تعدیلی است ما هم گفتیم مای این است ها میشه ل زنجرت به جای من انگار بذاریم لام اون ما هم تحویل به مستر بره ل زنجرت به خاطر قرشه خب مشغول شده از خودش به خاطر غرشی که داره حالا قرلشش به خاطر چیه؟ لشدت قذبی شدت قیزی گفتیم این شعر یک مقداری آ جابجا که بکنیمش میفهمیم میشه و تزنهو نفسو مشغولن انها ممای و زمج رو لشدت شدت دیگه موقع راحت میشه معنا کنیم و معناش هم فهمید یعنی این حواسش به خودش نیست داره چه چه شکل روی پیدا کرده به خاطر هایی که داره میکنه اونم به خاطر شدت قصدش خب تمام شد پس سه تا حالت اون شیر رو تو اینجا گفت یتعو و یردو و تزون نهود راحت تونستیم این رو هم بفهمیم بیت بعد رو ببینید خیلی ابیات زیبایی از لحاظ معنا و از لحاظ ساختار لفظی داره که اگه دقت کنید در شعر فهمی خیلی راحت میتونید استاد فهمه کلمات و عبارات عربی بشید میگه قصرت مخافته قصرت مخافته الخطا فکعن لما رکبل کمی و رکبل کمی و جواد مشکولا مشکول پست مخافت و ال ختا نما رکبل کمی جواد مشکول مشکولا خب اینجا داره اون شیری که حمله کرد به این آقای بدر ابن عمبار و این بدر ابن عمار با شلاق زد با او رو به زمین انداخت داره همون رو که توصیفش کرد بیان میکنه قصرت اینجا قصر ضد طول قصير یعنی کوتاه در مقابل طویل یعنی بلند ترسیت اثرات اون مخافت او الخطا مفعول بصرت مخافه مصدره مخافه مصدر بهش میگن میمی حتما شنیدید اینجا اضافه شده به مفعولش خطا جم خطوه است خطا جم خطوه مثل قرفه جمعش قرف خطوه جمعش خطا درست شد یعنی گام مسافت بین دوتا قدم رو میگن خطوه گام کمی یعنی پهلوانی که قرض در سلاحه کمی یعنی پهلوانی که غرق در سلاح مشکول یعنی کسی که پابند بهش زدند مقید به مقیدون به شکال یعنی کسی که پابند رو تقریبا من همه لغت ها رو افتم تقریبا همه لغت که داشت رو بیان کردم میگه قصرت مخافت هو. کوتاه کرده ترس از این شیر گام ها را م? یعنی وقتی لشگر این شیر رو دیدند ترس از این شیر کوتاه کرد گام ها رو دیدید مثلا یه چند نفر دارم میرن یو یه, یه شیر ببینن داشتن تونتون راه میرفتن. یهو وقتی میبینن یواش. بنی ترس باز میشه یک سرچشم میخکوب قدم قدمهاشون دیگه میشه خیلی کوچیک کوچیک یعنی لشکر لشکری که بود که با تو بودند وقتی این شیر رو دیدن با این حالت خشمگینش پا و از پا نمیتونستن بردارن. گامهاشون حبس شد. کوچک شد بسرت او، ترس لشگر از این شیر کوتاه کرد قدم ها را الخطا یعنی قدم های لشگر را فکه انگار این... این فکه انما این بارو میگن مای کافه که نه ادات تشبیه این ماکمی ها دیگه عمل نمیکنه ولی تشبیه میکنه این لشکری که ترسیده بود نمیتونست پا برداره و گام برداره فکر انما رکبل کمیگو گویا یا سوار شده بودند پهلوانان برست شد سوار شده بود پهلوان این لشکر جواده بود جواد اسب خوب اسبش رو سوار شده مشکولند در حالی که اون اسب مشکوله پاش رو با رید بستند شد؟ این مشکولاً حال از برای جواد جواد هم یعنی اسب خوب خب الکمیگم یعنی پهلوان میگه لشکر داشتن همینطور راه میرفتن خیلی با سرعت بهترین از جواد سوار شده بودن. هم کمی بودن پهلوان و غرق در سلاح. داشتن میرفتن یه این شیر جلوشون ظاهر شد با اون حالت. این لشکر یه دفعه جا زد. از دیگه گامهاشون شد پنیسان پنج خیلی همچین یواش یواش به زمین میکشیدن چرا؟ چون سواران ترسیدن از این شیر اصفا ترسیدن خیلی یواش یواش گام بر میداشتن. گویا انگار این اصفا را پابند بهشون زدن یعنی همه لشکر وقتی این شیر رو دیدن جا زدن ترسیدن لشکری که داشت به سرعت میرب وقتی این شیر مقابلشون ظاهر شد این لشکر توقف کرد اصف پا پاهاشون همچین یواش پنیسان پنیسان به زمین میکشیدن یواش حرکت میکردن ترسیده بودن این سواران هم از این ترسیده بودن روی اون اصف بچه شد؟ بگید انگار که این لشکری که این شیر رو دیده و ترسیده پهلوانش انگار سواره اصفی شده که اون اسب با شکال با قید پاهای او بسته شد خوب مشکل شد بعد میگه این لشگری که اینطور ترسیده بود و نمیتونست تکون بخوره خشکش با خودمون میگه وقتی این شیرها شیر در مقابل این لشگر سواره ظاهر شد اینا خشکشون زد تکون نمیتونستن بخورن انگار پای اصفاشونو با قید و با زنجیر بستن. اینو داره میگه. تکون نبود. حالا بعدی شیره حمله که کرد تو با یک شلاق او رو به خاک انداختی. از ترس این شیر این لشکر سر جاش خشک زده بود. خشکش شده بود. اصلا نبود تکون با خود. قصرت. قصرت فعل مخافتهو. فائلشه. الخطا مفعولش یعنی ترس لشگر از این شیر گام های تند اونها رو نگه داشت گام های تند اونها رو قصیر کرد اونها رو زد ترس اونها از شیر گام های اونها رو جلوش رو گرفت جوری که جوری که آدم احساس میکرد پهلوان اونها که بر سوار جواد خود است اسب خوب است سوار شده این پهلوان اسبش رو در حالی که اون اسب مشکوله انگار به پاش غید سده نمیدونم حالا دیده باشید یا نه مثلا این وقتی که جلوشون باز بود یه نفرم ببینید ترسی نداره و سوار اون شده داره همینطوری تن تون تون میرن یه چیزی جلوشون در میاد این از جا میزنن آه. یه دفعه سرعتشون کم میشه خیلی خیلی کم حرکت میکنن اون آدم ها هم از ترس دیگه این اصفا رو هی نمیکنن که برن میگه یه دفعه خشکشون زد ترس اونها از شیر گام های اونها رو جلوش اون رو گرفت اون رو جلوش گرفت دیگه تون نمی اما تو خشکشون زد مونده بودن انگار که اینها سوار شدن بر هایی که اون اصفها رو پاهاشون رو با زنجیر بستند خب فکر انما رکب کمی یا الکمی فائل رکب است جوادهو یعنی فرسهو الجید اسب خوبش رو که سوار شده مشکولان، مشکولان یعنی مقیدن حال است از برای جواب دیگه چیزی نداری پس شیر جنین اینها که ظاهر شد آن ترس این لشکر از اون شیر اینا رو خشکشون زد جلوی رفتنشونو گرفت پاهاشون رو بست گویا انگار پهلوان اونها سوار بر اسبی شده که اون اسب به پاش دید بسته شد و پاشو بستن بشنگ. بیت باید ببین القا فریستهو و بر دونه القا فریستهو و بربر دونها. و قربن خالهو تدفیلا القا فریستهو و بربردونه و قربت و قربت قربت درست است و قربت قربن خالهو تدفی لا فریسه یعنی شکار حالا آهوی بوده اون شیره شکار کرده بوده گاو میشی بوده شکار کرده بوده فریسه یعنی شکار بر یعنی داد و بیداد کرد عربده کشید در میشه. یه کسی که عصبانیه داد میزنه ما میگیم اربده میکشه دیگه یعنی بربره یعنی اربده کشید اینو اینجا برای اون قررش شیر به کار برده تطفیل ما میگیم فلانی توفیلیه تطفیل یعنی بدون دعوت وارد شدن یه دو دارن یه چیزی میخورن یه نفر سر میرسه میشینه پای سفره یعنی میگن توفیلی شد یعنی فلانی توفیلیه یعنی بدون دعوت اومده وارد شده و نشسته سر خسا ببینید اون شیری که قد کنید اون شیری که این لشکر حمله کرده و قررش کرده جوری که لشکر جا زده و از راه رفتن وای سده بوده و بعدم حمله کرده و این آقای بدرب نمار با شلاق خودش زده و اون شیر رو به زمین انداخته این حیوان بی دلیل که حمله نمیکنه به نش اون شکار کرده بوده تو اون بیابون داشته شکار خودش رو بگیر مصرف میکرده. بعد که این لشکر رو دیده به طرف او دارن میان این بعد معمال و افرادش اون طبقه غریزه فر... حیوانیش فکر کرده که اینها اومدن شکار او رو ازش بگیرن همه حیوانات اینطوری هندت تو توی رازه بقاها نگاه کنید و شیره شکاری کرده داره شکارش رو مصرف میکنه کفتارها میان شکار رو ول میکنه حمله میکنه به اونها چون احساس میکنه اونها دارن میخوان بیان بشینن از سر صفرش توفیلی بشن میگه اون طبق قریزهی ای که اینطوری داشت حمله کرد پس فریسه شد شکار شیر درست بربره هم که گفتیم یعنی سیه زدن و اربده کشیدن که اینجا اینو استعاره کرده برای اون شیر شیر که اربده نمی‌کشه قرضش گفته داشت اربده میزد خال یعنی زن خال یا خالو یعنی زن دو ما دیگه مثل زن نه که گفتیم دو ما از و قلوب بشه. تطفیل هم که گفتیم یعنی چی؟ تفلا یعنی داخل شد بدون دعوت یعنی توفیلی. چی میگه حالا؟ محنایشه؟ میگه وقتی که تو رفتی طرف این شیر لشکر که جا زد اما تو رفتی طرفش وقتی تو رفتی طرف این شیر اون شیر شکارشو رها کرد القا فریسته القا یعنی انداخت انداخت اون شیر شکار خودش شکارش رو رها کرد گفت لشکر جا زدند انگار که به پای اسبشون غید زدن اما تو نه تو رفتی جلو تو که رفتی جلو اون شکارش رو رها کرد تو را و شکار رو رها کرد و بر بر دونه دو ها, ها میخوره به فریسه و عربده میکشید در مقابل اون شکارش قرغش میکرد در مقابل شکارش که من اینو نمیدم به تو. مال خودم خودم شکار کرد حیوانات همیتورد من بارها توی رازه بقاها دیدم شیره شکار کرده کفتار اومده این با یک قرغشی شکار رو کرده حمله کرد و بر دو دونه ها دونه ها مقابل. یعنی امامه مقابل اون شکار خودش شروع کرد و زدن چرا؟ به خاطر اینکه که میخواست از شکار خودش دفاع کنه دیگه و قربت تو رفتی جلو تو نترسیدی. رفتی جلو قربند جلو رفتنی که خالهو گمان کرد اون شیر این جلو رفتن تو تطفیلند به جهت توفیلی شدن است گمان کرد این رفتن تو به خاطر نوعی توفیلی است یعنی نوعی دعوت نوعی داخل شدن بر غذا بدون دعوت میگه تو جلو رفتی جوری جلو میرفتی که اون گمان کرد این جلو رفتن تو به این قسته که میخوای بشینی سر صفرش و از شکار او استفاده کنی این خاله هو تدفیلن این جمله صفت قربنه خاله زمیر فایلیش خوبن میخوره به شیر هو میخوره به قربن تدفیلنم مفهول دفعه پس این طور گفت لشکر جا زد هیچ جا زدن وقتی اینو دیدم اما تو نه تو رفتی جلو تو که رفتی جلو اون شکارش رها کرد القا ستا یه تو داری میاد و بربر دو و عربد کنان در مقابل شکارش ظاهر شد مال خودم و قربت قربن و تو نزدیک شدی به اون نزدیک شدنی که اون فکر کرد میخوای از غذاش استفاده کنی فکر کرد بسته غذا فکر تو کسی هستی میخوای شکارش ازش و قربت یعنی اینقدر نزدیک شدی که نزدیک به شکار او شدی او فکر کرد میخوای بشینی سر شکار او و از شکار او استفاده کنی مویا فکر کرد که تو می‌خوای بیای بشینی سر شکارو و تو هم از شکارو مصرف القا فریستهو و بربردونه ها و قربت قربن سه تا جمله به هم عد شده خالهو تدفیلا صفت قرب خب این هم این بیت و نسبتا هم راحت بود و ما حالا من غیر از اینکه لغاتو میگم ترکیب رو میگم ظمائر رو هم به کجا بر میگرده شکل داستان قصیدش رو دارن بیان میکنم که بتونید شعرها رو راحت بفهم. صد تشا بهل خلقان فی اقدامه و تخا فتشا بهال خلقان فی اقدامهی و تخالفا فی بزل کل معکولا میگه که فتشا خلقان الخلقان یعنی خلق یعنی همین خلق و خویی که خود ما میگیم اخلاق میگه پس مشابهت پیدا کرد این دوتا خلق کدوم دو تا خلق خلق شیر و خلق تو بدرب نمار خلق و خوی تو با خلق و خوی شیر مشابهت داشت در چه چیز؟ فی اقدامهی در یورش اون شیر در نترسی و شجاعت و یورش اون شیر تو با اون شیر مثل هم بودید ما آدم شجاعت رو تشبیل میکنم به شیر دیگه خلق و خوش میگه در حمله کردن و نترسیدن و قردیدن و اینها مثل تو بود خشاب الخلقان خلقان دی اقدامهی اقدامهی رو میخوره به شیر در اون حمله ای که کرد و نترسید و میگردید و میآمد جلو عین تو بود خلقه مثل هم اما و تخالف ها. ولی خلقه تو با او فهم میکرد تخالف ها علف به خلقان درست شد خلقه تو با اون فهم میکرد چرا؟ اون درسته که حمله میکرد و نترسید و قرلش میکرد و شجاع بود و اینا اون این حمله و قرلش و این حال ولی چی میکرد؟ برای اینکه کسی رو نظره بیاد سر صفرش کسی رو نظره بیاد از شکارش استفاده کنه به خاطر بخلش میگفت این مال منه میخوام همشو بخورم اما تو؟ نه تو خلوم خود کریمه تو چنین کاری نمیکنی، تو به مردم میگی بفرمایید به سر سفره من بشینید و مخالف بود این دو تا خلق در چه چیز مخالف بود فی بذل المعکول در اینکه تو میبخشی معکول قضا رو تو دیگران به سر سفره خودت میشونی میرید از دستشونم میگیری میارید فی بذل ک و فی بخله آ، از این جهت با هم یکی نیستی پس در نترس بودن حمله کردن قررش کردن دوتاتون مثل همید شیرید اخلاقا مثل هم در شجاعت اما در کرم نه اون بخیله میبینه کسی داره میاد به طرف قضاش غلم میشه و حمله میکنه که نگذاره تو نه فی وزل کلمه اکولا تو از این جهت با او مخالف قشنگ افتاد ما وقتی یک کسی رو به یک کسی تشبیح میکنیم در یه بچه شبه دیگه میگه تو مثل شیر هستی اما در جرأتش ولی شیر حاضر نیست کسی رو در شکار خودش شریک کنه اما تو اینطور نیستی تو دیگران رو سر سفرت میشونی بذل کلمه اکول. تو بخشش میکنی غذای خودت تو غذای خودتن به دیگری میدی فتشا به فی اقدامهی و تخالفا تشابهه با تخالفه با هم تضاد دارن و و فتشا به فی اقدامهی و تخالفا فی بزل کل معکول پس در جرعت و اقدام و شجاعت تو شیری اما در کرم نه تو کرم داری شیر بخیله میبینه یکی داره میاد طرف قضاش حمله میکنه هر بده میکشه اصد در بوخل قوتوره تو در کرم اما تو مثل او بلسیه شجاعت تو هم هم قشنگ بود و تشابه الخلقان فی اقدام فی اقدام هی و به تشابه الخلقان گفتیم الف داره یعنی این دو تا خلق یکی خلق شیر یکی خلق تو این دو تا با هم مشابهند در شجاعت شیر و در شجاعت تو این دو تا یک سهم اما و تخالفا این دوتا خلق با هم یکی نیست در اینکه تو میبخشی معکول رو تعام رو اما او نه اون حاضر نیست کسی بیاد به شکارش به غذاش یه قدم هم نزدیک بشه خب نگاه کنید بعدی رو اثر یرا ازویه فیک کلهی حما متنن ازل و ساعدن مفتور میگه که اون شیره دو تا از اعضای خودش رو در پیکر تو میدید دو تا از اعضای خودش رو در پیکره تو میدید چی میگه اسدون اسدون یعنی هوا اسدون اون شیری بود که یعنی اون که تو زدیش اون شیری بود یرا میدید ازویه دو عضو ازو خودش رو ازویه مفعول یراست این جمله یراست صفت اصده اصد خبر هوی محسوب اون شیر شیری بود که میدید دو عضو خودش رو فیکر در تو یعنی دو تا ازو خودش رو در پیکر تو میدید یعنی دو تا از اعضای تو مثل اعضای او بود حالا میگه کنون اصلا دانی یرا ازوی ازوین وی. از بوده اضافه شده شده ازوین مفعول یراست که متعلق به یراست میدید در تو دو ازوش را کلیه ما هر دو رو، این کلیه ما بر برای ازوی دو ازوش هر دو رو در تو میدید اون شیر متن عزل و ساعدن. این متن و ساعدن. این دوتا بدل است از عضون عزوه اون دوتا عضو کدومه یکی متن یکی ساید یکی متن و دیگری بگید ساید متن یعنی کمر قسمت بالای خاصره کمر میشه مت ازل یعنی باریک اصلا امراتون زلاغ یعنی باریکندام کمر باریک ساعدم هم که میدونید یعنی قسمت پایین دست بازو اینو میگن گن ساعد مفتول هم یعنی به هم بافته شده مفتول یعنی به شما تناب رو چند تا رشته رو بگیرید به هم دیگه ببافید دیدید تناب رشتاش باید نمیشه مفتول یعنی مندمج یعنی به هم پیچیده آه. حالا ببینید چی گفت؟ میگه اون شیری بود که دو عضو خودش رو در تو میدید هر دو رو. یکی کمری باریک و دیگری بازویی به هم پیچیده دیدید که شیر قسمت رانش رو که نگاه میکنی وقتی از ران کشیده میشه به طرف شکم بسیار بسیار باریک رانها نسبتا قوی، ازولانی بعد شکم باریک بعد میاد جلو دستها قوی مثل همه آدم هایی که پرورشند هم کارم میگه تو رو که دید این آقای بدرب هم اینطوری بوده این قسمت خاسره و این قسمت ناف و شکم تو رفته بوده باریک قسمت بالای بدن بازوها و قسمت پایین بدن اون بسیار بسیار زماخت و ازالانی میگه این وقتی تو رو دید, دید اه تو هم دو عضو او رو داری مثل خودش کمر باییک بازوها به هم پیچیده و عذلانی اصدون یرا یعنی هوه اصدون او است که میبیند دو عضو خودش را در تو هر دو متنن ازل ازل صفت مشبه است یک میشه زلا چون اون متن. کمر مزکر بوده گفته ازاله صفتش غیر منصرف هم و ساعدن مفتولن این مفتولن هم صفت ساعدن. بازوی به هم بافته شده که این ماهیچه ها به هم بافته شده شلوبل نیست زفت. پس میگه این طوری طور دید درست شد؟ یعنی هوه اسدون یرا از که فیک فیک کلیه ما متنن ازل و ساعدن پس تو این بیت در واقع نمای از هیکل این آقای بدربن عمار رو به ما داد که کمر باریک قسمت بالا ازولاد همه در هم تلیده چون بازوها شو که میگه وقتی بازوها و این قسمت ساعد پایین این ساعد میشه از مچ دست تا این قسمت مرفق خب وقتی که این قسمت پایین دست این طور عذلانی باشه بازوها چی صد درصد یعنی شما نگاه کنید یه نفری رو که این پرورشندان عکس میندازن نگاه میکنیم اینه از قسمت موچه دستش تا مرفق تا آرنج این تا آرنجش اینطور طور ازوله ها به هم پیچیده خب این طور باشه که بازوش دیگه به طریق اولا خب اگر بازوها و ساعدها این طور ازولانی و به هم پیچیده باشه این قسمت یال و کوپال و سینه و اینها چی؟ دیگه به طریق اولا بعد کمر باریک میگه یک شکلی به ما میده که مثل این پربرشندان ها بوده این آقای بدربنه هم. میگه میان باریکی و ازولانی بودن دستان تو رو این دید فکر کرد که خودشه چون شیر همینطور تو ازدون یرا که کلیه ما متنن ازل و ساعدن مفتول لا مازال هلا او يجمع نفسه فی ذوره حتى حسب تل ار زمن طولا خیلی قشنگه یعنی واقعا این شکل هایی که داره میده واقعا دیده اون شیر رو و این شکل و اینطوری بیان میکنه که شما الان تو این راز بقاها بعدا همینها رو نگاه کنید میبین مازاله که از افعال ناقص هست یعنی پیوسته مثل که بگیم مازال زیدون امیر یعنی پیوسته زید امیر بود مازال زیدون دایی زید پیوسته دعا کن بود دعا میکرد مازال یجمع و نفسهو این مازاله زمیر زاله میخوره به اسد یجمعو هم میخوره به اسد نفسهو هم مفعولش شیر حتی این گربه خانگی نگاه کنی شیر پلنگ اینها اینها موقعی که میخوان حمله کنند دیدی چیکار میکنند خودشونو جمع میکنند یعنی دستاشونو میارن میچسپونند به پاهاشون یعنی جمع میکنند خودشونو کاملا اینطوری یه دفعه حمله میکنند یعنی به حالت کشیده ریستگ حمله کنند مثل فنر باز میشه میگه مازال پیوسته یجمعو جمع میکرد این شیر خودش رو فیزار هزار یعنی وسط در وسط خودش خودش رو جمع میکرد حالا وقتی میگه خودش رو جمع میکرد جمع میکرد که محمله کنه وقتی خودش اینطوری جمع کرد دستاش به پاهاش نزدیک شد گرد و گلمبه شد که حمله کنه حتی حسبتر بیوری شد که تو فکر کردی الارزم این خود تو فکر کردی ارزش طولشه شیره وقتی طول داره طول دیگه خب دستها جلو پاها عقب طولشه یه شیر در قسمت میگه وقتی جمع شد جمع شد انقدر طولش جمع شد ارزش زیادتر شد جوری که تو فکر میکردی ارزش طولشه یعنی حسابی خودش رو جمع کرد مثل فنر که حمله کنه حتی تا تا جایی که گمان کردی حسبت از افعال قلوبه گمان کردی الارزم هو، عرض رو از او از طولم انهو طول از او رو فکر کردی طولشه ارزش بیشتر از طولش شد همشه طول بیشتر از ارزش. میگه ولی انقدر جمع شد جوری که دست ها اومد واقعا چسبید به پاها کاملا خودشو رو جمع کرد جوری که آدم احساس میکرد ارزش طولشه ارزش بیشتر از طولش مازال یجمع و نفسه بود. این یجمعو که خبر مازاله شده میشه مازی استمراری یعنی پیوسته جم می خودش رو فی زوری زور یعنی وسط در وسط خودش یعنی دستاش رو آورد و با این فیصالت فنر جمع میشه که بتونه بپره حتی تا جایی که حسبت گمان کردی تو الارز من هم من هم وسط ارز از اون شیر را از طوله طول اون شیر. تو ارز او رو طولش حساب کردی یعنی انقدر جمع شد خب و... که ارزش بیشتر از طولش دیده می شد یعنی حسابی خودش رو جمع کرد که بتونه بپره مازال یجمع و نفسه و فی زورهی حتی حسبتر الارزه مفعول اول اتطوله که شده اتطوله اشبا شده دیگه فتحه و به تبدیل شده مقهول دفعه جوری که تو فکر کردی ارزش بگید طولش حالا چرا این کاری کرد که جمع شد برای اینکه بتونه حمله کنه، بتونه بگید حمله کنه مازال یجمه و نفسها فی زاویه‌ی حتی حسب تلاع الزمنهات طوله خب دیت بعد رو ببینیم. و یدقو به صدرل هجار که انهو یبغی الى ما فل حزیزه سبیلا باز اگه شیر رو دیده باشید موقعی که میخواد مثلا دشمن رو به ترسونه یا حمله کنه به او این زمین رو اینطوری میکنه سنگها رو به قول خودمون زیر دستش با این شدتی که میذاره خوب میکنه و یدق به صدر هجار که انلهو یدقی الى مافل حزیزه سبی لا دق, دق یعنی کسر شکست حزیز یعنی گودی زمین میگن حزیز زلت یعنی چاله زلت گودی زلت سبیلم یعنی راه یبقی یعنی یطلب یبقی یعنی یطلب هجار هم یعنی سنگ ها. جمع حجر. یه جا یعنی سنگ ها جمعه بگید هجری جمعه دیگهش الهجاره احجار این ها جمعه هجری یعنی سخته حزیز اون در واقع میشه زمین پستگودی درست چه؟ حالا چی میگه؟ میگه این شیره به خاطر شدت قذبش میکوبید زمین رو با سینه خودش یعنی با این دست‌ها و سینه‌اش می‌کوبید به زمین سنگ ها رو میشکست انگار که دست داشت بکنه اون زمین رو و راهی برا فرار پیدا کنه انگار که میخواست زمین رو بکنه و در زمین فرو بره اون داشته با قول خودمون میخواسته بترسونه این رو دستاشو میکره کویده روی این سنگ ها با سینه اینطوری سر شاورده بوده پایین باز حمله کنه روی زمین خودشون اینطوری با این دست ها میزده زمین این میگه که نه این کارو میکرد که میخواست تو رو بترسونه یا حمله کنه نه این میخواست زمین رو بکنه و فرو بره تو زمین تا از دست تو راحت بشه و یدق به صدر و یدوق و هی میکبید با سیناش سنگ ها را هی با سیاش سنگ ها رو می کوید میشست. چند نهه انگارین شیر یابقی طلب میکنه. ال مافل حزیز طلب میکنه صبیلا. اون سبیلن مفروض. او یا او می تلبد راهی رو راهی رو می تلبد به کجا؟ الامافل حزیز به سایی آنچه که در گودال هست یعنی در اون گودی که داره جلوشه و میکنه که سینه میکوبه انگار از اونجا راهی پیدا کنه برای فرار یبقی سبیلن الامافل حزیز راهی میخواد پیدا کنه به سوی آن چرن گون فدنا لا یبسر الخط بل خدی جلیلا جلیله خشنگه یعنی فریبش داد قررت یعنی فریب داد مقرور یعنی فریب خورده درشو ادنا از دونوه اد دنا، باب افتعال اون تا تبدیل به دال شده دال در دال اتقام اد تنا بوده بعد شده ادنا اد اد دنا یعنی نزدیک شد اقترب میگه این مكنه انگار این شیر را غرت او فریفته از او رو چشمی یعنی چشمش اونو فریب داده چشمش تو رو خوب بهش نشون نداده اگر تو رو میدید و درست میدید غلط می کرد که بخواد بیاد جلو میسه. چشمش او رو فریب داده گویا چشمش او رو فریفته فدنا چشمش او رو فریفته پس این نزدیک شده به تو نزدیک شده به تو. اومده حالا جلوی تو وایس شده حمله کنه. و الا غلط می‌کرد این کار کنه. ها؟ گوله دیده خودشو خورده. لا رو نزدیک شده به تو در حالی که لا رو الخطب جلیل خط یعنی مصیبت، مشکل. جلیل یعنی بزرگ. این مصیبت بزرگ که مقابل تو بزرگ شد. مقابل تو ایستادن باشه لا رو نمی نمیبینه این الخطف الجلیل این مصیبت بزرگ رو جلیلا بزرگ اگر مصیبت جلوی تو رو میفهمید و عظمت اونو درک میکرد غلط میکرد بیاد وایسه جلوی تو نه چشمش اونو گول زد اومد جلو در حالی که این مصیبت بزرگ که نزدیک شدن به تو هست رو نمیدید بزرگ نمیدید، گلخورده بودگه چشمشون رو فریفته بود. این مصیبت نزدیک شدن به تو رو اصلا بگید بزرگ ندید ب کرد هم مثل مثلا حیوانات دیگه مثل که افار مثل پلنگ چیزی هستی اینطور شد و کهنده ها قدرت و اینون اون فقطنا، لا یبصر الخطب الجلیله جلیلا این نمیدید مصیبت بزرگ تو را بزرگ یعنی گمان نکرد که این مصیبتی که بخواد جلوی تو وایسه به این بزرگیه عظمت مطلب رو درک نکرد گول خورد اومد جلوی تو وایسه پس عدنا یعنی اقترب یعنی اگر واقعا مصیبت جلوی تو وای رو درست حسابی میدید عظمتش رو درک میکرد غلط میکرد بیاد وایس. سدن اون خب چشمش تو رو به اون عظمتی که داری نشون نداد بوده چشمش رو خورد، فکر کرد تو هم مثل بقیه هستی مثل آمد جلو وایساد و الا این کارو رو اینجا منظور از خط به جلیل یعنی مصیبت بزرگ یعنی جنگیدن با تو رو در رو شدن با تو و که و گویا اون شیر قررت خو فریفته بود او را اینون چشمی یعنی منظور چشم خودش فددنا این فا حتف ادنا رو به جای قررت گولش داده چشمش فدنا فد پس نزدیک شد به تو در حالی که لایوبس رو نمیدید گمان نمیکرد. الخطب الجلیل مصیبت بزرگ را بزرگ گمان نمی‌کرد این مصیبت بزرگ بزرگه فکر می‌کره کوچیکه این جنگ با تو رو اینقدر به گور خودمون سخت نمیدید که تو با یه شلاق او رو اینطور از پا بندازی خب ده بیت از ابیات ایشون به شکل کامل براتون خوندم لا یبصرو رو درست شد دو مفعولیه الخطب مفعول اولشه جلیلا مفعول دومشه درست شد یعنی لا یوبس رو الخطب الجلیله خطب جلیله مالجلیل صفت الخطب لا الخطب بَلْجَلِيلَهُ خیلیه لا یزن گمان نمی کرد الْخَطْ بَلْجَلِيلَهُ لا این هم آد انشالله که در پناه خداوند معید و منصور باشید دیدید که خیلی سخت نیست راحت این عبیات رو فهمیدن چیز سخت نیست حالا بعد از اینکه فهمیدید یه مرتبه نگاهش بکنید در لغات مطالب دستتونه و میتونید به بهترین شکلش استفاده کنید. موفق و منصور باشید در پناه خداوند. عيد رو هم بهتون تبریک میگم. و سلام علیکم و رحمت الله و